فیلم بی پولی آیا تهیه کننده با شایسته کارگردان حمید نعمت الله موسیقی و آواز سهراب پورناظری بازیگران بحرام رادان شرکت دارم یا روز میرم اونجا لیلا حاتمی هواپیما راننده تاجیکستان راننده شخصی امیر جعفری به من الان بگم پاشو برو توالت بشور خرج فنا تو در بیار میگم چش سیامک انصاری به خاطر این لعنتی مغازه ایران زمین مفت از چنگت در ورتا بابک حمیدیان <تصحنت> حبیب رضایی امشب زنگ میزنم و به شما پر شما در اونجا باشین ولی دیدار ما دیگه به قیامت ایرج بسیار خوش دوخت و گرون قیمت سپیدی پوشیده پاپیون سفید زده کمی ریش داره جوون و بسیار خوش دیپه شوکو هم لباس زیبای عروسی پوشیده دختر جوون و زیبا با صورتی محسوم اونا از ذر خونه با استقبال مهمونا و اسپند و گل و نقل و شاباش وارد میشن. با جناق ایرج جلو میاد و بهش تبریک میگه بقیه یه مردای فامیل با ایرج رو بوسی میکنن و بهش تبریک میگن. کنار سفره عقد میشینه. در بدرکتر محترمه خانم شکوه Heidari. آیا خانم معلوم و معلوم بله. مهمونا دورو بر سفره عقد ایستادن دست میزنن. ایرج چیزی رو توی دستش از شکوه قایم میکنه دستاشو مشت میکنه و به سمت شکوه میگیره گل یا پووش میخواد بازی کنه دستشو باز میکنه یه تهگردنی طلا به شکل قلبه اما بدون زنجیر شکوه انتظار گرفتن این قلب نداره به ایرج خیره میشه میخنده قلب و برمی داره. با جناق ایرج دست میزنه نقل روی سر اونا میریزن شکوه خندان محو تماشای ایرد شده مات بهش نگاه میکنه و شکوه توی خونه خودشون جلی در ایستدن مهمونا تا خونه بدرقشون کردن ایرج در اون میبنده به شکوه نگاه میکنه دکمه های کتش رو باز میکنه و وارد حال میشه کتش رو در میهره روی موقع میندازه با لذت و فخر به خونش نگاه میکنه شکوه داخل اتاق میره توی خونه پر از دسته گل و سبدای بزرگ گله که براششون هدیه فرستادن ایرج چراغ اتاقی رو که تضینش کردن روشن میکنه از اتاق خارج میشه به سمت آشپزخونه میره چراغ راهرو رو روشن میکنه وارد آشپزخونه می شکوه داخل آشپزخونه روی صندلی نشسته و گریه میکنه ایرج در یخچال باز میکنه بشقاب میور بر میداره پشت نمیز رو به روی شکو میشینه پشت خوابونت برم پشت چیزی درست کنم من بخورم من شام تو عروسی فقط همون تا لقمه جلو دروبینه خوردم یه حج من دارم گریه میکنه. دیدم گریه نداره که یه رو جلو مهمونه گریه کردی من خدافزی یه فس هم حالا آدم که بسید موضوع دوبار گریه نمیکنه کن. تو تو عروسی حتی یک کلقم با من حرف نزد حتی یه بار نگاه هم حتی یک با. چند دفعه کردم یه بارم دیگه داش اشکم در میموند. میمدن میگفتن چه شده؟ فکر به خاطر جدا شدن از پدر مادر. دلداری میدادن که گذشته گریه نکن. راست میگن جدا شدن از پدر مادر گریه نداره. مخصوصا وقتی هم جوشوار تو تور زده باشید. دختر خانواده من میگفتن؟ خیلی حسودیشم شد نه. خوشوغلونه پدر. خوشش کلوی من گریه نکن. ست بزن. بزن بشه. کیک دفتر کار آقای فروهر ایرج براد دفتر میشه از جلوی منشی میزر و داخل استودیو با پروژکتورای روشن میشه و میبینه که درن اکاسی میکنن سلام آقای علیه سلام یه قرابه چه خبر اینجا؟ چه خبره؟ چه از ببینم رو آقا باشه؟ ساب دماغا تو رو ما هم میفستم بگی با آقای فروهر از خواب شده ا فر فروهر همون شد. منم برنامه داشتم دو تا فسو ارجاع بدم به که تو شرکته شما طراح لباس منم یا همه. یه نصف روز نبودم اومدم ببینم همه چی تغییر کرده. خیلی باحال میکنه. آقا فروهر. پرویز کنار میز فروهر است. با چه خیلی باجوری به استقامت می‌کنی. آقا این چی چیچی شما با ما تو دبیسان همکلاس بوده. هم. مرتضی پیشاهنگ. چطوری باجوری می‌کنی؟ افراشه پرویز ماشین ایرج میام ایرج با شکوه تلفنی حرف میزنه پرویز کنارشه هنوز که سه نفر نشدیم بذار به دنیا بیاد آها، اگه از آران داری یه نفر حسابش میمانی خوب پس دیگه تحنا نیستی که باش حرف بزن درد دل کن بخن نتست نمیره خونوم یکی زنم دارم بیرم دفتر شکتی که دوستان زود میام و نداری خدافر مرماده زنم مهمونی های دوره ای دارم اوه هر دو هفته خونه یکیشونه امشب امشه اون کسی که مزش بردم میده یارو مردی که بی خود و بی جهد خوش و رقیب من میده مثلا تو چی؟ تو کولداری، موفقی، خوشلیفی اینها نیا کن منظورش سبورایی شهرداریه. از آدم بدبخت بردم قبل از اینکه برم دوبه تو کار تبلیغات و انتشارات بودم این کتاب که این دورو برمی بینی همه چاپ خودم این هم آقای چیزای دیگه ناقابل دیگه ببخشید دیگه این سرسید امسال ها آقا خودتون رو دیدین؟ بله دیدم آره؟ خب حالا من گودو این نه نه نه نه, نه، من اینم کلده نگاه این سیفوریه به پای موتورای دم سینما شده. حتّی خاطرتو ما چند تا اخلاق نداشت. خودشه نرمال نبود دیگه زیاد نیوردن سر کار. اینم اونجا بیکار میشیش کم کم شد به پای موتورای مردم. که زن و با موتور می‌وردن سینما، یه پول می‌ذاشتن کف دست این، که موتوراشونو خوب فروش می‌کرد، اینم خوب این شبش دیگه سرنوش آدمی که برو دنبال احتیاط مواد مخدر همینه دیگه آخ آخ آخ, آخ. این عشان. این موری خدا بیمورده مورد؟ همون موقع خیلی مریض بود آه این, این پشتیخانیه خاطرتون هست خیلی عشق خارج بود آه. آن نمی احمد علجسته که از که دماغو همش گریه میکرد یادتون هست خبر دارم ازداش که دنیا شده اونم ایره جان تو همه اینا این وقت من و شمایم که وزمونندت خوبا خب خانواده شما مثل خانواده ما خیلی ضعیف بودین میگه با بچهگی که من و شما داشتیم تا همین جان خودم بالا خیلی هنر کردیم باید نبود من و شما دوزدی هروینی شیرهی آشخار جمع کنی چیزی بشی، به این منا اینه رو دیدی؟ ترجعه خودمه <تصفح> آخه من شاگرد یان تو دو تو دوبه استاد مدیرت اقتصاده اصلا با فروار این قضیه آشنا شدم اون را مدیریت بازرگانی راهکارا و دستاورتا بینام جش ببین امضا خودی آن ساخته با دستخطش خود اینکه شاگرد دکتر مانتنی که اون دیو استاد بزرگ همه ای ما هاست. من آخو دارم تز دکتر مانتنی رو تو ایران اجرا میکنم فروار راخته سابقه من دندوناش ریخ آقا یه چیزی جالب بهت بگم همه نسخای این کتاب پروش اصن نایاب شدن یه دونش هم نیست تو بازار. دو تا نسخه داشتم یکیش دادم به فروهر، یه نسخه هم که دیگه خدمت شما جهت یادگاری. فروهر که سواد نداره، اما کاریزما داره آقا، کاریزما داره بچو. آقای عاج، اینا همش مقدمه بود، برای اینکه ما مخ شما رو بزنیم که اگر امکان داره به ما افتخار بدید، با ما همکاری کنید. ما میخوام شما اگر میشه یک تر برای بنده بکشید، تر کوچ‌چروا کارمندی ها، اما تو کلاس شیک، هم گرفتم. پیش‌رستا میدی؟ بله گستا می‌دین. چرا نمی‌دیم آقا؟ نخت. نخت. از سرعادت خوشم اومد. آقا چلدین پسر پورا برمی آره برمیگرده؟ آره درست قرنص برمیگرده. آره قرنصش نه طراح لباسه اونجا. مدل بابا طراح. نه آقا نه خیم بوده زبان بلد نبوده برگشته ولی طراح لباسه نه آقا چون مانکنه. نه آقا مدلم بوده اینا یا اون این عکس چه؟ آقا مانکنه. ولی الان طراح آقا مانکن یارو تو دور شد اسمش هست اینا اسمشه راست اینجا علاوا کارگاه خیاطی فروهر ایرش بین میزای شرخای خیاطی راه میره با ناباوری به شلوارایی که دوزنده ها میدوزند نگاه میکنه چرا دارین به جای زیپ کار میکنید شلوار پاچی آقای فروهر از دفتر فکس دادن به جای زیپ دو کار کنیم بهتر این گردش یه الگو طرح و الگوام پسرش رو دفتر کار پورا یادم بیا گرسان رو بخورم سر ساعت بله سلام, سلام ایراج جان رسیدم به ممنون فروهر خارج میشه ایراج از کنار عکسایی از خودش که توی قاب‌های بزرگی روی دیوار نصب شدن میگذره ورده اتاقش میشه پسر فروهر که جوانی امروزیه در حال نگاه کردن به ترهای ایراج تر رویات خیلی است. از دفتر ایراش خارج میشه ایش با عصبانیت کتش رو در میره از دفتر خارج میشه و به سمت نیست منشی میره خواه من از شمای که حرفرف های من رو به واقع پول منترهکنه من بچه نیستم یقه پیران اون سنگکی شده اون طرح ج و تکراری جای دوخت اندن روی یقا برای دکمه کم کصتی ها به جیسزیپ رو که فلزیک هاکن شبار پارچه ای پیر کوچاهدختان ها کنن توی شبور آدم به کی بگه پیرانی اصلا من دوی شرکت نیمونم. پدر به خیره به رفتن ایرج نگاه میکنه دکتر در حال گرفتن سونوگرافی از شکوه اندوزی جنین با سن حاملگی سی هفته داره تاریخ زایمانو کی بهتون دو ماه دیگه ده تیر بچه دروشیه آزمایش قند دیدین بله همه چیز خوب بوده ایرج کنار تخت شکوهی ایستاده محو تماشای تصویر جنین میشه شب ماشین ایراج شکومه ما امروزم شرکت پراینه قهر کردم بای بای داره بای داره قول کردم یه ها کردن داره نه نداره خب فکر میکنم مردات میشه به حاملگیم آخه میدونی آدم تو حاملگی حساستره زود رنجتره یه خودم ترسوتره چی فکر کردی که یه هی کردی ها دیگه دیوایشو الان یه بیکار شدم. وای حالا من چیکار کنم؟ تازه آبستن هم هستم. وای بابا آخه یارو صاحبم رفت به اون تصویری که دیدم فکر کنم من منم مادر کسی که تو پدرشی جالب نیست. من که بیکار نشم. آره بابا تو که بیکار نمیشی تو, تو همه جاته؟ آفرین. ماشاالله. خوشبلو. آره بابا خوشگلان. وای شب شفی گذشت. من از پدرشون میگم تلفن کردم. منم اعصاب اینا ندادم یه بهشون دلیوری میگم. بعدشون کمشه دی شورا. من صلاح این دینام. بارک الله. بانک ایراج استرس داره و مدام دفترچه حسابش تکنید چل هفته دفتی موجودی بدین لطفا دو میلیون و هفته آه. یه تومنش ترابل بدین سر هفته هم برد بره ایراج این اوشکولا زنگ زدن گفتن بیا شرکت خوشم اومد خوب روشونو کم کرد بدبخته دفتر فروهر ایرج وارد میشه اکساش از روی دیوارا برداشتن و عکس پسر فروهر رو به گذاشتن منشی عوض شده من چیچی هستم شما جایی دوانی؟ بسیم باشیم بشیم اگر دوست داریم بیشیم ایراج میز منشی مویسته مسئله شخصی کن چک تصویح حساب به صفحه چک پا داشت یعنی اینا رو بگیرم که برم که برام؟ پس دستف کامل دیگه. به اضافه پاداش. گفتیم پاداش؟ بله. آق چمالی هست؟ چای آره چای میخوام. بگید چای میخوام میگم براتون بیارم. تو رو کجا پیدا کردن خانم ادبی؟ بهت میگم صداش ما من کل کلچل میکنی؟ بهت میگم صداش فقط صداش کن فهمیدی؟ آق چمالی؟ آق چمالی. آق چمالی اینجا. یه ناتاس به پاکتی که چک پاداش توشه نگاه میکنه چک پاداش نه، کنه این واسه کمالیه. تقدیم به تو. نانوس خودت. به تو، یعنی بگین چی چیزی به, به پاداشت نداره. رو به همراه چک تسویه حساب برمی‌داره. خب عکساشم به سختی با یه دست بلند می‌کنه. زیر بغلش میزنه و خارج میشه. خونه پدر ایرج ایراج از که کنر حیات بیرون ماد. با پدر از پله ها بالا میرد. نظر کردم به درویشان منافی بزرگی نیست مشتی طول با همه اشمت نظرها داشت بر مورش آقا ایراش کان مشتی به سر که آمدن سر زدم سر زدن رو سو خوبه سر را دود دو بود بیدید دستشویی از شرکت هم آدم بیرون میرم اتاق بالا مدارک کم وقت دارم شکو پشت تلفن گفت مادر بیکار شدی یه وقت زنده تو لکنه مادر چی میگه بیکار شدی بیکار شدی؟ مادر به سر دهلیات برمیفرده سلام امون جون سلام, سلام داداش. سلام یه وقت دست شکو جون رو نگیری بیاریش اینجا بالا رفته بیگه کلاس میذاری ما همش انتقاد کنیم ببینیم بچی هست واسه تالاب واسه خنده شما چیکار داری به کار من تو حیز من حواسبات کار به این خوبی گیر کسین میاد که علی یکم بالا نشسته همینجا من داره قند می جوه کف اتاقو موچو ارداشته تلفنم دستش همینطور ورمیزه اما فرق دارن آره بابا فرق به روی پشت بوم اتاق برادر ایرج اونجاست. با اینو بیرون کردم به من گیر میدی؟ بیرون کردم. با صف مفزدی. من خودم آدم بیرونم. بس تو اینم که الله خوشم. برو ببینم میشه دیگه تا تاقم. برو موردش رو خود تو اتاق تو برام. تو که شو مدال میخوام. بذا خودم میارم. اوه غلط. ناراحت نکو. اوه اوه اوه اوه در چارو یک چنام نقل است. اتاق قدبلر بی اغلا. گام میخورم که گام میخورم. به کسی چراپتی داره. اگه من موتور نخریدم از این دردیر تو همونجا به این زی میریزم چش بزنم خکر کردی لطفاً این جار بزنی ایرش بیکار شده رو سوای آلمان بکنی الان دارم میمیشه هاج باقیره خوب بخت تو عروسی التماس میکرد برامسش کار کوچه ایرش داخل ماشینش بنتهای کوچه کچباق میرسه جمعیت سیاه در حال تشرید جنازه هستند. حاج حاجباغه رو سه بار روی دست بالا میبرن و روی زمین میگذرن ایرج ناباورانه به فرمان ماشینش تهکه میزنه روایتی اگه چل مومن شهادت خوبی تازه رو بدن طرف هشتیه. حاج حاجباغه خوبه مردم اومدن شهادت خوبی تو بدن گوش حاج حاجباغه خوبه چه جور آدمی بود برد که خوبی بود خوبه چه جور آدمی بود آدم والا که مرد خوب <متحدث> دفتر پرویز آه. پرویز دست رو در میاره من به هر دلیلی من دست خودمو میگیرم من از به نگرفتن کار فکر نمی کنم من به خود کار فکر میکنم این دیگه خودیتونه اما من به هوا باشنیت کردم تو باید مستقل میشدی تو باید از اون راه فاصله میگرفتی من نمیدونم مشکلتون چی بوده ولی این اتفاق باید خیلی زودتر از اینا تو باید روش کنی تو باید میل به قد کشیدن داشته باشی یعنی چیکارش چه بمونی آدمی مثل تو میتونه سالانه با 20 تا شرکت، 20 تا قرارداد 20 ببنده. من از وقتی وادم تو این هرфе کول باقامو کرد دادم. تو همیشه کول با تو اول بودی. به خیلی خیلی معضل هم میخوام بی ادبیه، بی ولی میشه بفهم من دقیقاً بگی چند وقتشه؟ خانم چند وقته شه؟ خانم الان هفت ماهشه شه. یه دو ودی فر تو می خوای چکو بنیسی برای دو دیگه؟ بعد دقیقاً برای اینکه پول بعد وقتی دستت باشه که به دردت بخوره. اگه قبل از زایمان به پول بدم همه‌شو می‌خوری، حرم می‌کنی میریزی دور. اون وقت موقع زایمان پول نداریم. ببین به من اعتمادش. آقای من این چک اینم دو تا کلید که از فردا بشی آقای خودت. مبارک. ایراد چک و کلید دفتر پرویس رو می‌گیره. پشت میز طراحی توی یکی از اتاقای دفتر پرویز نشسته پرویزم کمی دورتر پشت میز خودش مشغول کاره پشت و سر ایرج روی دیوارای دفتر عکسای اون به در و دیوار نصب شدن ایرج مدام در حال کشیدن شدن طرحهای جدیده شبانه روز سخت کار میکنه و طرح میکشه از خیلی از طرحها راضی نیست بیمارستان اِراج راه راهروی بیمارستان میدوه. به برانکارد میرسه که روش خوابیده و دکترها اونو به سمت اتاق زایمان می چرا نباشی؟ زایمان تو جان. دفتر پروین. پروین جان. پروین. سلام. ها. سلام علیکم آقا. این چک رو برام عوض کن. جان. چک رو نوشته برای زایمان من. خب زنم الان هفت ماه زاییده. منم چک رو برم که عوضش کنی بنویسی برای امروز. و <تصفح> منو ندارم که من حساب 9 ماهگی شما رو می‌کردم چه می‌موسم می‌خواد 7 ماهه بذار. بالا. بابا من سبانه سبانه خوردم. ایراشی حیات بیمارستان نشسته. پرویز با دستگلی به سمدش پدر. میاد پدر آخه پدر آمور زیده کجایی تو چقدر پدری برازندهی شماست بیا بیا بیا بیا پدر رو ما بیا ایرش بلند میشه باشه شدیسی کسر یا دختر بلا بردی ایرش نراحت دوباره میشینه و شروع به حساب کتاب میکنه پرویز کنارش میشینه ببین باید فکرشو کردم ها باید از قرض میگی عواصبه من خرج بیمارستان حساب کنم من واسه همه میگم باید بریم از یکی قرض بگیریم احمد رنجه اماجان چ تو میفهمی چی داری میگی من برم از احمد رنجه پول قرض بگیرم بله اگه پول داشت کرد آقا جان داره آره سه چهار میلیونی داره به خیال خودش نگه داشته واسه زن بگیره به خورد خودت تاریکی دنیاست دیگه ببین و هرگه زن نخواهد گرفت عرا ما چه فلسفیه. ولی روتوی حساب دیگه میکنه. تو بگی حتما بهت میده. به خدا. بریم پرویز جان، من حال و روز خوبی ندارم. دلم آشوبه. من میخوام من کمک کنی برو. منم واسه همین دارم میگم احمد رنجه، جلوی خونه اهواز. نمیای تو دیگه؟ عالی نمی‌گیره. خوربند باز. احمد پوشیش آلبادی و پیراهن سفید و سینه چایي به دست بیرون میاد. حالا حلب و خالی روغنی رو برای نشستن ایرج کنار ماشین میذاره. ایرج میشینه و چایی برمی‌داره. احمد کنارش چوباته میزنه. حقیقتش چه جوری بگم من minä همین olet is, bároin käy, zää, fogo, kia, budä, خودم رو joo, کنم همش en وانمود کنم مثلا خیلی آدم no, هستم. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, جان مادرم درست همون روزایی که با دل شکستگی تمام به خودم میگفتم ای خدا یعنی میشه منم یه روزی زاد و داشته باشم یه تاییه به نامی پیدا شد که فکر میکنم اومدنش یه جور دعوته یه هدیه هست قیامته میخوام از ازدواس کنم این خب منم برای برای خودم برنامه دارم دیگه اول که دیگه حال و این زندگی نکفتی رو دیگه ندارم. هموم نمیرفتم یه ما یه ما سگ بعض من زندگی کرد. با الله الان یه برنامه دقیق هست میخونم پاکت پول رو به دست ایراج میده رو چشم بهت میدم کهی به این برمیگرد ببینم امت جون من یه چک دارم که مبلغش دومیلی کنه دو دومی دیگه خوبه؟ خیلی خوش آدم. خیلی خوش آدم چون با این پول دو تا اتفاق خوب میافته اولی تولد بچه تو بعدم ازدواج من یه بینه زندگی خیلی قشنگه والا ما گنگ زدیم به نصف بیشترش با این مشرف به مفت ایراد سوار ماشین میشه چه. احمد چکو میگیره بی امضا و نام چک نگاه میکنه لراحت میشه این که چک پرویزه به من چکو تو مطمئن باش آگه من یک اپسیلون فکر می‌کردم این چک پاس نمیشه، داش اش نمیگرفتم. تو بعد خیلی دست کم گرفتی ها. بانج. ایراد وارد بانک, ای بانک میشه. به سمت باجه انتهایی بانک میره. احمد نگران و ناراحت کنار باجه ایستاده. Injera cosa کجا پیدا کردی؟ a te ver. پول تو حساب پردیز نیست. پول تو حساب نیست؟ نگران امیرح. نگران نباش. ابدا نگران نباش. توین منتظین تا بیا ایرش در دفتر پرویز رو با کلیدش باز میکنه. هر دو داخل میشن و درو در میبندن. توی یه تاریکی داخل یکی از اتاقا روی صندلی میشینن. با گذشت زمان خوابشون برده. پرویز در دفتر رو باز میکنه و وارد میشه. احمد با صدای پرویز بیدار میشه. از اتاق با آرامی به داخل حال سرک میکشه. پرویز چراغ راهرو رو روشن میکنه وارد اتاق میشه که همیشه درش بسته است. پرویز از اتاق بیرون میاد. از زیر بارفیکسی که به درگاهی نصب کرده رد میشه. با یه دست به بارفیکس آویزون میشه. ادا میمون در میگیره. بعد وارد دستشویی میشه. اراجه اراجه وارد دستشویی بیا اجازدی اینجا یه وقت ناراحت نشه بفهم ایرش خیره به در اتاقی که همیشه بست نگاه میکنه به سمتش میده احمدم به دنبالشه احمد در کمدی رو باز میکنه و داخلش سرک میکشه ایرش به داخل اتاق میره وقتی که وارد میشه چراغ روشن میکنه اتاق پر از کتابیه که پرویز روز اول به ایرش هدیه داده بود و روی اون سرمایه گذاری کرده بودن تخت سفری گوشه اتاق زده شده روی زمین مقداری روزنامه و نون و پسمونده غذا و لباسای چرکه یا های منزاد همزه خدا این پول ما رو نمیده عمال ایراد، ایراج، مومد خوبی؟ ایراج جان خوبی؟ این همون کتابیه که تو بازار نایاب شده بود، ها؟ ناشش چاشتاخ مونده بود دو تایه آقایش باسه من رو فروحه آره؟ خیلی، بازار ناشه، خیلی خرابه. خیلی در تمام مدت من کنار این بسته های نایاب می چرا اینجوری می کنی؟ تو یه هشیشی هستی این ای ای باش؟ از تو بعیده عمال میخوای اکسای بچه تو ببینی دارم ها کلاورده لنگه تو قبلا دیده بودم. به پستم خورده بودن اشتباه من بود که با پیش پا افتاده و مزخرفی مثل کمی زمینیشی دن آشقا دنیا کار کردم هرچی دلش بخواد میگه ها حالا دوتا آقا آقا بشت کلتم هوا برش داشت معدب باش دیگه معدب باش من افتادتو رو پولت بیکنم چکه چرا پاس داده بده داد. داد. آقا من مقصرم من مقصرم داد امشب به من پول میدی تو کولا دیگه باید برم چرا گاف صندوقم همه دور گاف صندوق جمع شدن پرویز از داخل گاف صندوق که تقریبا خالیه شیشه ای رو در میاره که داخلش مقداری سکه های کوچیک و بزرگ خارجی دیگه درست سکه است ولی همش خارجیه مارک و سنت و فرانک از بچه که همش خودم جمع کردم در واقع کلکسیون خیلی نفیسیه تا بموفا روی شونه ایراج میزنه ایراج شیشه رو میگیره با نگاهی عاقلند در صفی بهش خیریه میشه زیر روش میکنه خریه احمد خریه خودت بذاری به خریه نره نکن ما واقعا خره واقعین منم به جون خونه تو میزایی تا پرده حساب پر پره نباشه پره تا زیر پره امشب زایی میزنم نو صوفه حساب پره شما در اونجا باشین ولی دیدار ما دیگه به قیامت احمد خونه ایراج شکوه بچه به بغل توی خونه راه میره بچه رو تکون میده به سمت اتاقی میره که ایرج روی اتاق روی زمین خوابیده ایراج ایراج ایراج ایراج دادم تو خواب؟ سر من داد زدی تو خواب داد نزدی نهانیمه من باید ده بانک باشم میری بیرو من خرید دارم باید بری دارو خونه تو من ده بانک نباشم حسابیه که دیگه خالی میکنه چی چی خرید دارم ببین بیاید قینو بگیر من خسته شدم به خدا چشم دیگه هیچ جا رو نمیبینه یه سرگرمی جوکی چیزی دلم پوسید دیگه بیره جراب میپوش از اتاق خارج میشه بانک موجودی ندارم راه رو احمد روی پلهای تاریک راهرو نشسته. ایرج هر چی کلید میندازه در دفتر پرویز باز نمیشه. قرار کرده. قرار کرده. یعنی کشور خارج شده. بیا بریم خروجش ببی بریم مامور خودرو کنی کنیم. مامور عزیزم. ببین ایرج من از ازدواجم با خانم من به خاطر میترسم ذربای روحی بخونم. خودم من تا ندارم. تمام هم‌نسلای من هم از دختر پسر همشون ازدواج کردم حالا فقط منم. از من دوباره تو اون لاج تنهایی اصلا دیگه پول منو بده دیگه اما چون خود تو باختی این حرفات چه میزنی حالا برو از خانمه دیگه مهلت بگی مثلا سه ماه سه ماه نمیشه بابا نمیشه باشه بذار بزن حرف بزنم دو ماه نمیشه میخوای پول منو ندی من پولمو میخوام داد میزنی خب یه ماه نمیشه حالا نام هستم من با یه پول جور کنم تو بدن دیگه ایرج از پله ها پایین میره ببین تو تنها کسی که من دارم این حرفا رو بهش می‌زنم. منو پیمای بیکارم. خب تکلیف پول من چی میشه؟ من میگم پیمای بیکارم تو میگی تکلیف پول من چی میشه؟ من با دل دل, دل میکنم خب ماشین تو افتوشتم. تو که الا ماشاءالله داری ساعت قلمبه 226 ماشین تو افتوش چی داری میگی؟ زن من خونه بودش که نمیدونن من پای ماه بیکارم. نمیتونم به این دست بزنن. زنارو که می‌شناسی بفهمو ندارید طلاق می‌گیرن. همین دیگه. تو بخوای دانسته نیگاه داری من هم خوند دانم و دارم دیگه چه تو دانسته به فام پول نداشتی ماشین تو بفروشی میره زن من به پول ندارم نمیره اندی اونها نکو پول منو بهم بده دیگه اون ماشین تو به نه خدا ما میذاریم پرسه وای این ما سب لیزیم که میشود که من چه تکلیف دارم من چی میشه؟ ببین پول منو جیور کن پول منو هر چیز دوتا جیور کن بهم بده شو که دیگه زن ندیده بعد ده نخوای پول من بدی رست پای عالمت می کنم به خدا به همه میگم بهش زیاد تا. بزنی سرتو میبرم پولتو میدم دیگه اسمتو نمیارم خواستم شخصیت اصلیتو بفهمم دیدار ما به قیامت تا قیامت هم بکشه من پولمو میگیرم ماشین ایرج ایرج با موبایل صحبت آن... میکنه احمدم کنارش آلی. نشسته پول میخوام سه تومن خودم دارم واسش میذارم دو تومنم وامشه تو هم یه 3 تومن دور کنی حله. ن اما با قانه با هشت نامی زن هشت نامی میگیره دیگه. آره. حالا مرداد است فریب. برو زنگی افتاده چی شد؟ برو زنم میگیرم کجای ای داری؟ علیم بگو. حالا مرداد شوال نواشتی دیگه شرکت منصور. احمد و ایرج روی ساندلی کنار میز شناشند. اگه همیشه همین شریکش و همیشه کار برات کردن لازم آرایشی است. یک ساعت نیم دیر که هست. از وقت بعد کلی با مردی از کنارشون رد میشه و وارد اتاقی کناری میشه. خواهش پرخره شما اطلاع ندید آقا من که گفتم احتمالاً درسته نه. ولی شی کردن میز کارش و برداشتن کیفش میکنه بهروز و روزنامه به دست کوشروخ که کرول لاله وارد میشه. سلام علیکم. منتظر منصور جزدیگرزاده این؟ منصور جان قراره برای تامین هزینه‌های ازدواج این دوستمون که وزرات مناسبی ندانن یه بر برام پول بیارن از این جهت مراجع شدم آها خالص شما خوبه شاهروخ اشاره میکنه که با بهروز وارد اتاق کناری بشن اونا به داخل میرن ایرج گوشاشو تیز میکنه که بفهمه اونا چی میگن شاهروخ به سمت در اتاق میاد و درو میبنده باید. باید. باید. باید. باید. باید. چند ساعت بعد ایراج و احمد کنار و بهروز داخل اتاق روی یک گلیمی که وسط اتاق پهن کردن نشستن تخت و یخچال و میزی درون اتاق است. خربزه می‌خورند. منصور اینو با پیک موتوری فرستاده برای آقا چیچی. چی. آقا چیچی چی شما شمایی؟ بله بله. ایشون رو بده خدمتشو. ایشون رو بده خدمتشو. داد شما دارین خوند. ایراج بلند شد دو طرف پاکت رو نگاه می‌کنه. سرش رو به سمت آسمون بالا می‌بره و خدا رو شکر داخل ماشین ایراج خربوزه میخورن دیدن این جماعت از اون اتفاقات کوتا و کتاها عجیب بود. رفتیم دیدیمشون پولمونو گرفتیم و دیگه شاید هیچ وقتم نبین باشد عجب همه چیز کوتاه و گزرها بود تو هم برای من تموم شد جدی توی این پاکت تو هم پوله دو تومانشو بردار یه تومانشو بزن تو پاکت بمونه خربوزه اینشه ترامه احمد لبه پاکت رو پاره میکنه. ایرج ناباورانه به 2000 تومانی نگاه می‌کنه. این فقط 20 ثانیه. 2 ثانیه نمیشه. پول منو هم بده ایرج. پول منو بهم بده. آقا پول منو بهم بده لامصب تو چرا الیت میشی؟ من لاکونای من جدی ام ها. اون آقا منصور بی شخصیت بگین من دنبال این نیامده بودم. دلم میخواد باش بگین. اصلا اعتراضی به گفتن ما نیست. بهروز میتینگ نیا. میتینگ نیست. بگی وقتی وجوده کمک به افراد فقیر نداره کمپوست در نیاورد. بگی امروز دلیل جوانو شیکون. اصلا مو 20 که منصور نداده بودین اینو هم تو باید هم داره داره این داره <تصفح> <تصفح> بعد بده این بچه. نفری فقط 5 تا هم داریم 10 تومنم شارخ. بعد منصور میره <تصفح> <ميگن بكین نیست؟ تصفح> می می می داری میره به قحقرا. میگم میتونی یا به رو. البته میتینید. به دستی را جون میگیره به سمت آشپزخونه میبره. در رو باز می‌کنید. ليش بگو متادی. بگو داری میری به قحقرا. بگو خاطر این لعنتی مغازه ایران زمینو مفت از چنجت دروردن. یا از اون به اون توپیک فقط همین مونده باقیش هم همه رو فروخته داره دود میکنه این چهارتا و پرت کله نشه شب میره خونه به خودش بزنه و گند نده واقعاً که آدم نامتعادلی هستی متاسفم آره اکبر این منو ایرج تو 14 سالگی تو بهارخوب مادوروزورگ ایرج که هم به فرنگ من باشه بعد قول دادیم که آدم استابی بشی اما ایرج من بارم افتاد میینه رو خودم که میینه دارم میکشم فقط به خاطر اینکه غمم فراموش بشه یه قه درام ازراقه اون اونم وقتی تو جو بیفتی کاریت ندارم بلم کام گلیدی به بخوا... دستویی کجاست دستویی دستویی با شهرخه خونه ایرج از اولش ایرج روی تخت راز کشیده شوکو رو, رو روی پاهاش داره میخوابونه کولر می خودشو با دفترچه یه باد میزنیم همیرم توی بایتون مخواهم بالشو منفشو برمودار و میره توی بایتون با. بسیار روز یه شیرکت زدم دیگه روز میرم اونجا بابارک بود؟ ایرش کنار ماشینش که زیر یکی از پولای بزرگ پارک کرده استاده موتور سواری نزدیک میشه مردی از ترک موتور پیاده میشه و به سمت ایرج میاد ایرش سواری یه 500 هزار تومند میشه بشمارش ببین ایراج هلی. ایراج سوار ماشینش میشه مرد به سمت دیگه ای ماشین میره سرش رو از شیشه ای ماشین به داخل من نمیگم یه ما بیست یه بردار بیار ولی اگه لازم داشتم بردار بیار بیار بیار بمپس باش هلی هلی. دفتر منصور منصور سیگار میکشه همشون وسط اتاق با توی خونه ولو شده. ایرادش اون موبایلش باشه. دلیل میگه خوشگلی درونی باشه. میگم بسازی و خانمی میگه مش حرف موب خوشگل باشه، اخلاق نداشته باشه، ارزش زندگی کردن نداره. فرمایشا میفرمایید. من واش زندگی میکنم نوکرشم هست. حتی اگه بگه، کم محلی بهت بکنه، تحقیرت کنه، خوشگل بشو نداره. و اگه اون فرد زیبا تصادفاً دوچار زشتی بشه چی؟ بی رحمانه اون از خودم میدونه. من خیلی آدم کثیفی هستم. سه سو طلاقش میدم. میگم این پاتکون دادانه نشونه استرس ها. بله من خیلی استرس داشتم. دورم زد. نه. بله نشونه استرس دیگه نگران هستن، نگران رفقا. منصور بگو دیروز چه جزری میزد برای جور کردن خرج عروسی رفیقش. رحیم ناباورانه به سمت ایرج میره. همه بهت زده اونا رو نگاه میکنن منم چه جور شده چه کم دارید والا کلا شما کجاید ما کجا این کیت منو بده شما هم اخلاقی حاجی ما رو دارید تو نیک کاری بده من, من از طرف ایشون یه جورایی یه نمایندگی گیی دارم که یه حرکت های اینچینی انجام میدم اما اصولی به صورت قرض که با قول حاجمون مقصده توش نباشه چقدر؟ چارسط هزارت ما چارسط من جور شده یه کم دارید کم دارید رحیم از داخل کیفش پول در میاره دهان ایرج باز مونده دویست سی ست چارسط خونه بچه رو بغل کرده محتاط در کشورو باز میکنه از داخل جهبه یه تیک تلابر داره از اتاق خارج میشه خورده چایده دکتر دکتر گف های این بچه خیلی حساسه بعد یکی دو سال خیلی مواظبش بیش باشه. لا لا لا لا لا لالا لالا لالا لالا لالا لالا کنم لالا لالا از لالا کنم لالا لالا لالا لالا لا پی اینجا کار دارم رو به شکول میده اولا که به این منشه شرکت هست وقتی من زعی میزنم با ما بد نکنه. میزنم هم بد صوت نکنه زنگ میزنم تون میگه نیست باید بی عدم بیشور بی خودفسی قط میکنه اما در مورد کنکور کنکور چیه؟ کنکور که من میخواه برم کلاس کنکورش نه ریاضی بله برو میگه اسمش احمد رنجست آها چه شرکت سفر پول ما در سفر پول که از کنکورت هم شابت میدم بیارم خبیری تاجیک استا من که نه بچه ها میرم من آخر سا و ساقه نهایی میرم اونا دارم میرم سفارش تاجیک ها رو بررسی از شپ کتش پول برمیداره و خارج میشه شو پول باقس گرد هرچه نبینم از راحتترم تمکنه کسی شده دیگه من توجهی ندارید نداشته باش عشق من درسمه عشق من خودمم عشق من اون نیستش که. من هنوز بهش ندارم که. ایشالا بچمه. فقط حیف اون همه زمانی رو که صرف اون کردم. جدی دروخر. دست در نخر. دیگه نمیشه مرامش. میخوای بهش مور. میخوای ناشور. از این پولا ده من. دیگه هر چی. بده بابا نترس بیا. اون چیه دیگه؟ سکه کاس. بدی 200 اسکالاسconcursana بهش پول بده. اینو که حزنا من, من نمیخرن. اینا جون فوقش میخرن 195 تومان. خلاص 95 مثلا با 5 تومن کمازی عراشد مجلل‌تر میشه بده من 95 تا ایرج پول رو به احمد میده بیا همین دیوستانو بگیر ولی تیکه به آدم نند خوش نات کنم باش برو داشت برو برو بهله خواهشوام برم از این ورا خب برو دفتر منصور داخل اتاق شما بی که ایدم به وقت بملازم که تایدام به حمیدی ندادیم حالایدی بخور تو طرف اول مزد تد دفعه به این دولت شایی گفتم باقی جوری این دفتر مویشی نمیخواد نسخنی. گوشش که بده کار نیکس که رفت یه مویشی دردشت رو بورده حالا هم پول نداریم بهش بدیم کن حق داره مویشیه دیگه حق داره داریم داریم از اویه که دوستتون بگیرد از او چی چی که ثربتمنده که بده که پوزدار داریتون و ما که یادهیتون رو بوردیم برای ببین خانم ما شرایط اقتصادیمون الان نابسامانه هنوز مالیت و عوارز اینجاره نتونستیم بدیم منشی میخواد و اتاق آتاق منسور بشه و برو بابا بشه. اون برنه رو بهت اختار میکنم تجور میکنه. و رها در نهای خالو محترم. اونم یکی لنگه ما، اونم نداره. دروغ داره میگه که داره به یارو کمک میکنه. کمک چیه؟ بهش بدهکاره. الان بیکاری که دو هفته است میاد اینجا میخوره و میخوابه. میفهمی؟ یا میخوای زندگی مردم رو تو تعریف کنم؟ هارو به ایرج با عصبانیت از اتاق خارج میشه. به هر دوی اونها نگاهی میندازه و به سمت در خروجی میره. رحیم پشت دره. شما نکوکار نبودید. حالا من جواب حاجیمونو چی بدم؟ بنده سوالم اینه شما با این وضع بدهکاری و بیکاری چطوری میخواییم مبلغو به ما برگردونی؟ آقا من یه صحبتی دارم با شما شما که روزا اینجا تلپی برا خواستیم که نداری جاییم نمید ماشینتم که در در خوابه فکری نیست؟ قابل بررسیه والا منم مشغول میشم با ماشینا بریم و کشی؟ به بزننت نگفتی اینجا شرکتته تو. خب منم میشم راه دیگه دیگه. هم که منو ندیده. عروسی کنم که الحمدلله دوره ژاپن رفتنم من بود. صبح به صبح میام دنبال عزرت میذارم میبرمت اینجا خودم هم میرم توی خط پرتی کار میکنم. به من الان بگم پاشه برو توالت بشور خرج فنا بچتو در بیار میگم چش. من اگه این وسیله تو رو داشتم یه حرکتی باش میکردم. نه اینکه اینجا بشینم و هر روز باشم این این آتاشکالا رو بفروشم. اینا چی آخه؟ ها این این فشورم تو. بودش سرد المنتش خراب شده ولی مال خونه ی ایراج بله سلام خانم من راننده آقای چیچی ام لطف بفرمایید من دم دارم مرسی با دیدن ماشین ایرج از آیفون تصوری به فج شرکت جدید جلسه دفتر تست تا هواپیما راننده تاجیکستان فقط من دیشب و یادم به من نباشه. خونه ایرج. ببین منم با تو میام. بچه رو میذاریم خونه مامانم بعد من یه دقیقه دم تو خونه میخوام دستشویی کوو بگیرم. آره مرسی. دستکشا رو آشپزخونه رو در میارید. مانتوشو میپوشه. میخوام با بابا گیتار رو بغل میکنه و از در خارج میشه. ماشین. هر دو توی ماشین کنار هم نشستن منصور را میکنه. شکوه بیرج که سابی به خودش رسیده خیله. تو دلشو راحت پیدا کنه و تن اش خانس درم بپیرودی. حالا چی؟ اونجا پرسوناش. خیلی شلوغه نگاه کن چه سافی. شما برو سمت دفتر، تو رو بازم پس هست. ما امروز دفترو میبینیم، مرتضی نامه‌نگاریا دارم بعدا وزارت صنایع. وزارت صنایع پیاده شو، من میرم می‌گردم با آقای رو پیدا دفتر الو. چرا این زنه داره منو دور دنیا میچرخونه؟ دفترچه کنکورش هنوز نگرفته. الانم رفته توی فروشگاه داره خرید میکنه یه فنگ بهش بگو یه درباش بگیره بده رد کارش. منم برم دنبال این کارم. هیی نداره هرجو خواد ببره. چی چی نداره؟ شب میشه دانشجو کار نداری، نفر اول خودش گیر میدی که چی شد آقا من خودم دارم یا هرجو می‌خواد ببره شما داد اون اعتراضی نکرد رفت خین ادمی کهش مواد نرسیده ماشین ایرج منصور عصبانی آشفت است <تصفح> <تصفح> تمام صورتش عرق کرده خشمگین به جلو خیره میشه و رانندگی میکنه دفتر منصور ماشینت وسط اتوبان خوابید زنه تم کرد رفت زنه منو تو ول کردی؟ چرا شروع داری میگی زنه منو ول کردی وسط اوتوبان کی زنه تو رو ول کرد؟ آوردمش دمه این پلاه بره بیاده خراب شده رفت اون دره بله منتظر تاکسیه یه آله بابا اینه ها وای ساد. سوار شد رفت به من چگه چرا خاموش کرد؟ و خاموش کرد دیگه خمس ای من این تایم می‌گوی پیار بیاین لگن رو درست کنن یک ذره پولم ندارم گرγε نکشو کو با گرγε نخوا کار تو راه بندازی اصلاً ممنونم حالا با این کارتا من تسلیم گرفتم ماشینم بفروشم پولشو بریدم تو شرکت بله فهمیدم جنبم کانات رفاهی نداری شروع کنم با این لگنته ادانتر برو ماشینا بوکسر کرد یه دکش ماشینو با سرعت به سمت تعمیرگاه میبره دفتر منصور رو به های بگو بسته منصور تو حرف نزن تو یکی هفت حرف نزن تو اصلا حرف نزن تو برای بدبخت کردی چی چی میگه من تو رو بدبخت کردم آره اون موقعی که روزی 10 15 هزار تومان میواردم میذاشتم کف دسته دادم بعدی نبودم حالا من تو رو بدبخت کردم نکنه راست راستی باورت شده که من شوفرتم اون یه وقتی که واسه جا گرفتن دفتر بد دادم دیدی اون برگردین برعطوره بر اون غرض تو برگردون بر بر بر بر بر بر. واقعا تو فکر من از من طلب داری آره. اون یه سالی که بابا با باباتینا اومدیم بالای خونه بابای من مفطم جنی نشستهین یادت رفته اگه میخوای من نت نفرم اینو دزدار پاییم. به سمت منصور حمله میکنه. جلوش آمیگرند. بابا کامون با اگه پول آچی ماشی ماشین شو. من از خواب و زندگی افتادم. خودمون همه چی تو پکین پولم. اگه یه بارم توش کمی ماشین کی میخواد جابد؟ بابا این پول رو به نیکیالم و راحت شدی که این کاری یه چیزی یه جنالیم که من ندارم. جلوی در دفتر منصور. ایرج با آجر دو تا از تایرای ماشینو در میاره و داخل دفتر میبره. طایرا رو جلوی رهیم میندازه. خودش روی زمین ولومشو به یخچال تکیه میده. نه نه زه، كل طرف. میش طرف شو. بده. باشه. آو دادا. کوله فاطولا. باجنا. باجنا جان. خونه ایرج. همه دور میز شام مفصلی نشاستن و شام میخورن. با جلق ایرش توی حال کمی دورتر در حال حرف زدن با موبایلشه تو از من نراحتی باشی؟ نه چرای نراحتی بگو با من راحت باش من انتقاد پذیرم همه قرآن وجد من نراحت بسنم بشه شامتو بخش چیه یه بود يلا حسب الشيء. آقا جون، حسن حسن باشا حسن رشطيه. فصل بننج 2650 تومن. اگه برسیم به همه من هممون آكلههم. برنجش هم درجه یک اعلی همین برنجه. نفر اول خودم یک تن برمی‌دارم. بالا بگید ببینم چیکاره این. بوگو برای من 300 کیلو. گوشی. 300 کیلو. 300 کیلو برای آقا جون یا داش 300 کیلو. گوشی. برای ما 100 دو نفر آدم بیشتر هم 100 دو نفر آدمن. 4 کیلو بر با اون 300 400 کیلو دستور. آقا جون خودمو، و خواهر ایشون بزن 600 کیلو. برای خودشو ایشونو خواهرش بزن 600 کیلو دستور بده. آقا رژیم داریم، به اندازه نمیخوریم. بزن 50 کیلو. اینا رژیم دارم بزن 50 کیلو، احتیاج دستور بده. ما 4 تا آدمو بخور هستیم. بزن 4 این ست ست ست ست ست بزن نداریم. رئیس کل پوشاک در خاورمیانه عدد بگو. و سبعه تا شرکت کبابی دارم. 10 کیلو. آره ما اینا مردام. ببینید خوبه، ضرر نمی‌کنید. 20 کیلو. بزن. واسهن جو، جنب بزن. 200 250 کیلو. جرا وسیله‌های ماشینش رو می‌فروشه. شاهرخ هم کمکش میکنه تقریباً دارن ماشینا اوراق میکنه هیچ یه هوای اونطوری نشه من بگم. الو. سلام شوکو خانو. آنگر. بله. نه منی قبلا کنکو. ایراش انگش انگشتش شیشه جلوی ماشین که خاته زیادی داشت شسته میگذره. به چیست؟ به دولش شهید داره به منصور میگه که از طبقه بالا اونم از توی پنجره داره این صحنه رو نگاه میکنه و سیگار میکشه بدبختی بیچارگی مرمون تنگوشه کردن داره بفرمای داخل بلفل دلمه همه رنگ روغن زیتون روغن هسته انگور باش خداحافظ اخشو باندشم بردم آقام کنکور قبول شده پشو بریم یه چیزی بخوریم شب بعد وسیت گیتام چای بخرم شیر خوش. دارین ساعت 5 دستیم محمدی. ببین بچه‌ها چنقمو تیر می‌کنم بیاد اینجا. آمریکا به دنیا اومد. 40 روزه با مادرش اومده ایران. اهل قماره ولی سر از گلیو پوش در میاره. دست به بیکی می‌کنیم یه 500 دلار ببازه. ما یاد دارم واسه اون پول نیست 500 دلار. پوش بریم. چند ساعت بعد همه دور تادور گلیم وسط اتاق نشستن. دارن گلیو پوش بازی میکنن. منصور روی تخت دراز کشیده. بهروز و شاهروخ و بچه با جناق دولتشاهی کامبیز دستاشون رو مشت کردن و رو به ایرج و دولتشاهی رحیم گرفتن. کامبیز وسط بهروز و شاهروخ نشسته. شاهروخ با چشم به ایرج اشاره میکنه که گل توی دست کامبیز یانه. اوکی. اوه، کولهترا. İne alan dostlar gol vermem چی چه؟ چر قیافتو کچو کوله میکنین؟ هر روز باز داری میتین میان؟ دسته دیگه. همه چیو میگیم میتین؟ من تو این لحظه خود خودم. حالا مگه تو پول گذاشتی آتی؟ باید درست بازی کنیم. پول آورده، تو اون شش خاطر خاطرخواجه ش شعبون ماهام نیست جوره ما رو بکشه. رو 1250 خودش حساب کرده. چرت و پرت میگه، ببین چرت و پرتگی. زه چیزه، نزه ساطورتا قزه. نزه گسماسا. آ، یه شیورد مرغوبی بود ماها. و با سر رفیق. بابا با این مفهوم هیچ کس تو زندگی با من رفیق نبود هیچ کس به من الفاق نکرد بیچار زنه ببین بذار بهت بگم اینا با هم گاب بندی کردم بیدون لوزه ما برنده بودیم ما برنده بودیم گاب بندی؟ بله واو گوشه میکنم فکر کامی یکی سب کن کاری چه کامیز نراحت بلندشو وسایلشو جمع میکنه از اتاق خارج میشه دولتشاهی پشت سرش بلند شو میخواد مانع از رفتنش بشه. نه نشم, میگه. نه نشم که خواهر زنه یه روز میبره میذاری کف دست زنه من. زن منم اون موقع خشتاگمو میکشه سرم. ما داشتیم برای این پیادش میکردیم. من زرگری صحبت میکنم. اون اشاره میکنه شاهروخ به زبون عمر. هر روز یه وقتایی چت میکنی ما ها رو رو کنین امشب نمیشه این بدون شیر خوشک پوشک بره خونه. دولت شایی شاهروخ از جیبش اون پولدار میارن. شاهروخ یه صقمه به پهلوی بهروز میزنه. پدر دوستا تو از این انقدر من با علاقه چسبیدم به کنکورم ناراحتی؟ ناراحتی که انقدر به مهمونی قبولی توجه نشون دادم؟ بابا از اندازه علاقه من به خودت ناراحتی؟ بیشیار حسرت اما نداری؟ گیتا توی ننوشو یه از قبازی دستشه تو برای کسی تنگ میشه؟ برای من نه برای مادرت کسی هیچ را کسی رو دوست داشتی؟ کاهی احساس تنهایی و نگرانی میکنی؟ وقت درگیر میشی؟ تو اصلا برای چی با من ازدواج کردی؟ میتونی تو به من بگی؟ نفیل میکنم بابستی تو من در حد بابستی اساس این خونه و شغلت و شرکتته مارک بایدم بخوندی داغدار مسعود میگه یه شب بیاین خونه ما با شکو خانومه دخترتون گیتارم میگه با خودتون بیارین خیلی دوستتون داره ها همین بابا میگه هم عین اونه تولدت میگه کیه بچه‌ زن میگه یه جوری با هم صحبت کن یه جوری دی لباسه حرف بزنید ما حرف حقو الو می خوبی بعد میستی مگر شرکتم البته جلسه خیلی خوبه بگو ببینید بعد مینیز. شاهروخ خودکاری رو از دست دولشای میگیره و به ایرج میده ایرج کف دست شاهروخ اسم دارو رو ما بگو واقعا سنتی باشه یغسکی اسکی خیلی عقیق خوبی به نظر من یغیب بود زنه من خوبیتو نداره یعنی بسردن بکوشم بازه بزنی میگه که این داروی که خانمت افسردگی شدید خوب نیستم. یعنی که افسردگی شدیده زن من افسردگی شدیده میگه به من چه خونه ایراج شکوه روی تخت افتاده و خوابش برده آه. آه. آه. آه. آه. بچه توی بغل ایراجه کی جون بابایی که وقت ناحت نش این قلب رو بر میدارم ها بچونه باوا میخواام برم برا خودت از اون کل ما بخرم که تص و باات باشون جوش نمیزنه این قلب طلا مال من این بنی مال تو به مامانم میگیم قلب طلا گم شده این صنجوق هلاسی عبدالا عبدالاست قلبه, که. قلبه که. کن قلبه گیتار رو بلند میکن و زیرش رو میگرد عبدالایی فکر میکنه گیتار طلبه رو خورد دخون دخون دخون دخون تو این عکس که من قلبی نمیبینم متب دکتر در این عکس دوم اینجا تصویر چیزی مشخص نیستش البته که های ممکنه که یه جسم خارجی طوری تصویر گرفته بشه ازش که دیده نشه ولی به هر حال اگر هم که خورده باشه خب پی پی میکنه و خارج میشه دفتر بردش ولی اصلا اینجا گرم جهنمه ولی پر ریخته پر ریخته اساسی هم پر ریخته ها ولی خب گرمه دیگه این اینجاست منو ببینه چه حالی بکنه این میگه <متصف> اینجا خوابیده که کسی موزیمش نشام ببین منو چیه ناراحتی؟ آره آیه این کاره ببین منو ایراد از من پول طلب داره یه نقل چک آره من رفتم بانک دیدم نتن ها چکو نزاشته اجرا بلکه به هارو گفته آقا بگیم بیاد باقی ببینمش حتما دارش باستوان با تنگ شده من حلاک شعوری بچم آقا کارمار چی کار میکنه؟ میره آقا به کارمو چور نمیشه الان هم خوابش به هم ریخته بیشتر روزا میخوابه موتادی چیزی نشده که جون جندوسته که سمت این عرفانه میره آفرین. پرویز در اتاق باز میکنه ایراج کنار پنجاره روی میز بالشی گذاشته و خوابیده پرویز داخل اتاق میشه ایراج ایراج راجا آقای راج علی کی سلام پرویز رو میشناسه یه دفعه بلند میشه و یقه می گیره. رو پرویز رو میگیره شروع به زدن پرویز میکنه پرویز بیرون میدفه و در اتاقو میبنده و قفل میکنه از در پاکت بزرگی رو به داخل اتب میفرسته آره کاری نداره دیدم بابا اقلنگ بذاردم بگه برای چی اومد آخه بابا برات پول آوردم برات کار آوردم اومدم بایت قرارداد 20 ببندم قرارداد 20 بخوره تو سر در اوکان ایراج جون پیشقس براد آوردم بوی بهبوط اوضاع جهان میشنومم چک باشه درو میشکنم میوم میکشم از زیر مشت لغت به خدا نقده بابا بیا آه. آه. بابا من پیشقسو میدم میرم سه ما دیگه میگم که تمرکز به من نخوره اله ایراج پاکتو باز میکنه از سوش ایران چک 200000 تومانی درمیاره و ناباورانه بهش نگاه میکنه چند روز بعد منصور توی راه پله روی پله ها نشسته با موبایلش حرف میزنه شاهروخ که فال هندونه و اشتارف میدونه بست کارم رو هندونه من هندونه بخورم من با حالا حال هندونه بخورم ایرج با ظاهری مراتب از پله ها بالا میاد در شرکت رو پلوم کردن ایرج کنار در وا میره ای وای ای وای ای وای حالا چی کار کنم؟ شان نخوابیدم ای وای. از کجای؟ کجایی؟ مگه اینجا دفتر حزب بوده که حالا جلسا جای دیگه تشکیل بشه سرهنگ مسخره احمد نه داد زدیه شکایت کردم بستنش من چیکار کنم حالا روزا کنم قبل سوری بمونم بلن شو بولا شو به داد مربوط نمیشه پلوم مال مسائل مالیاتیه. پاک ایراج و منصور وسط چمن دراز درست کشیدن هر کدوم یه تیک مقواز انداختن ایراج غرق خوابه یه خواب عمیق قلت میزنه به صورت روی چمن ها خوابیده اصول اصول منصور نیست تو جا. آ، شدی؟ شوکو کیتا رو بغل میکنه. روی مبل می‌شینه. ایرج روبروش روی زمین نشسته. پیپی فکر پی صورت ایرج ور افتاده موسیقیو ایرج تو اینترنتی تستایی هست که میگه آدم ها چشونه. چقدر مهر و محبت دارن، چقدر افسورده. تستا میگفت من افسورده‌م. ایرج می گفتم برام قرص زولفت بگی. خونو بر افسردگی دیگه همون تستو میگفتن تو مضطربی گرفتاری پنهون میکنی تستا رو جواب دادم گفتن تو خیلی تنهایی به من گفت باهاش باش اینترنت گفت باهاش باش, باش. و همسر رو توصیه کرده بود شوهر رو تنها نذارین تو گرفتاری ایرج به من بگو اگه تو با من حرف بزنی من آدم خوشحالی میشم دیگه قرص نمیخورم قرص من توی من افصادهی شدید گرفتم از دست که از تو دورم ایرش آب دهانشو گفت میده با شک به نگاه بکنه تو زن باشدوری هستی تو رو من باشدورم آره خیلی باشدوری پس بزه ایچی بهت بگم درد روشده دارم روشد میکنم همیشه تو روشدی که فاصله های دردناکی هست میقهمی؟ عشان واضح بگو مثل دوران بلوخ که همه جای آدم درد میگیره بعضی شرکت زدم شرکتم سعودی بود اما الان تصمیم گرفتم برای مدتی حد سه چهار ماه شرکت رو کنم با چرا؟ جایی ادامه بدم ورشکست میشم مینونی باید این فاصله رو ایجاد کنم تو با دست پر برگردم شرکت تو با منی؟ معلومه که با تو آره با تو زندگی مثل کشتی میمونه که ما باید دو نفری عرشه رو به دست بگیریم سوکانو عرشه که عرشه هست آره ولی مشکل اصلی اینه که بعد تو این مدت یه مقدار سختی بکشیم من داشتم و نداشتم زرمایی گذاری کردم یعنی ما هیچی پول نداری. نمیتونم ببینم کشم توش پاره تلاس و وقت دست شوارم خالیه گور پدر تلا من با تو هم عزیزم معلومه که با تو هم سکه ها کنیم میبینو همه اینا رو میفروشیم جب همه دکور ماست نمیخوام که خودم رسوای آلم بکنیم با باشو همینجوری پولای منه بددخت و نفتک عدیه ها کلاس چون کول برام ماما بشم. دکتر کرمانی برام لاغر میکنه. لاغر بشم سکه میده به آدم. بریم دیزین با بچه ها بریم بخاطر سایت داشته باشم. قبض تلفن من گدی چاو سلطانی. بریم با بچه‌ها فبلد نویس آران بیت‌کوین. بریم ها سر خاک سهراب سپهری. پاییش بچه فنج میچ 12 13 ساله زن گونه پاشه رفته قمر سر کاشون جشن گلاب میخوام بدونم الان تو این بدبختی و بیفولی این آقای سهراب سپهری میاد 10 شینی بذاره کپتاص ما. گوشتی کهای دوست نیوی نیقتی دو سبزی. خای، که تومار در تومار. جانوارش 90 درصد باشه، اخیاشورش سف باشه، چیپسش سرکه ای باشه، کلمش بروکلی باشه. زن من نمونه است، عروس با سالیقه است. همه بدبختی‌ها نتیجه خرج دورانی که زن تو مخفی شده بوده. با تلفنه. ایراج داره به شما نگاه میکنه، ببینه کیه که کی جواب بده یا نه. هر دو دارن راه میرن. شوکو با پاکت بزرگ وارد حال میشه. حسین عوض عبو طالب نیست صدود صرف صد... و صدو ز... پرویز ناکسته الو ایره سلام الو سلام پرویز من قرار بود نور تو دیگه زنگ بزنم ان ورد و آماده هست قسط دوبام آماده است؟ اگه آماده است که خیلی عالیه مردش من میگم آماده هست باز تو میگه اگه آماده است <تصفيق> زود بیا قسط دوبام ورد بیار اگه زود نه یا قصه دومو با ما کار به تحویل نمیدم اما مشتری پای کار بایست اگه میخوای عجله که تم. باشه خدافز خدافز دیگر. زنگ بزن پنگشم به شب مامان تینا و فتولا و همه تیر تایفتن رو دوت کن مهمونی نوبت خونماش پراشو طول بده دو ساعت این سنگ چشته و واسه بالا سر من نفهمی قرار شده پول بده اگه قرارو پول بده پوله رو گازمون خود خود خرجش کن میخواد ذهنیت به خرج بدی برو چهارت تیکه روزنامه برد بیاد تا میکنیم ساخ پسوف میکنیم میذاریم تو پاکت رو چسب میزنیم میدیم دستش پولو ازش گرفتیم ها شاید در گزارش پاکت حرش. بزرگی وارد حال میشه <تصفح> پاکتو به پرویز میدی میگره اگه در نقرار خانم حار ویسم پکیت کوچیکی رو به شکر میده. شکر روی مبل دیگه میشونه. ای جان. خانم من اصلا حلاک استعداد این آقام تو طراحی. به میشم برای تراش. انشاءالله با اینو از فردا ایام جدیدی شروع میشه بین من آقای رج. و آقای رحمت. دیگه میخوام میشونم از شما بگیریم و پسش هم میده. وای چه چه خدا خدا خدا خدا این دست کم بعد پون ساعت باشه شکو به سمت پاکت میدوه دفه می پاکت رو پاره میکنه اما توی پاکت پول نیست ایراج عزیزم می از اینکه که در این نامه پولی نیست می رنجی اما بگذار تارت که تصویب شد در ایامی که داریم از خجرتی در <تص> کسافت کسافت اه ایراج نامه رو مچاله میکنه و پرت می‌کنه. اصلاً اینه ولی پیشنهاد زای به مامارزینو. کیش به حرف آدمو گوش نمی‌کنی، همین یه دفعه گوش کردی. با سر جواب مثبت میده. ایراج به سمت تلویزیون میره. ناخنشو میخوره و فکر میکنه عصبانه به سمت شوک بند داد. به چی رو نگاه می‌کنی؟ چی؟ گفتم به چی رو نگاه میکنی هیچی به اگه یه دفعه دیگه به اساس این خونه به اون به بولورا، به دکورا، به چیزایی که جلوی چشمه حتی تجملاتی حتی لکس، حتی غیر واجب نگاه چپ بکنی من بیانم اتو چندی ما دارم از و صرف صاحب رو چندی ما، تو که سه سماغش شکرد رو تاثیر کرد. چه فرق میکنه خب ما چندی ما دیگه روی مابل میشینه شکوه گریان از فرش دفترچه حسابی رو درمیه رو و به سمت ایراج میده جز فروختن آبرون دفترچه پس انداز گیتاست گزرشته بودم واسه پس انداز واسه آینده چه می‌دونم جاهدش بی بگیر برو باش خرید کن فقط که داد نزدن درم دیمونه میشه <تصفيق> امام زده ازاداری دحیه محرمه ایرج لباس سیاه پوشیده شکوه هم با چادر سیاه کنارش ایستاده به تن گیتا لباس و مسلم رو پوشوندن ایرج قابلمه ای به دست داره هر دو ناامید و ماتم زدن مرد جوانی علامت رو از رویشونش بر میداره مردم توی کمربند و لباسش پول گذاشتن ایراجون رو ایراج به سمت او سر تو سر باشه زیر علامت میونه. تافه نما شامونا رو یه حرکت خودمون. کاری تو برام. یا خونه. پیپی پی کرد دیدم نبود یکی دیگه چیکار داری میکنی؟ منم یادش میدم چجوری پول به نظر تو که فرهنگ پسنداز پیدا کنه بدونم گلک رو خانم فرهنگ پسنداز؟ توش پول نیست بده ما با, با اون رو بول نزن رو که بیشتر شبیه یه جبس از دست شپون میگیره کامل برش میگردونه یه تومنی هم بین کاغذ خودده از این چیه؟ آه پوله دیگه این پوله؟ چیه؟ پوله دیگه بفهم پول قرم کردی دیگه نه من نه تو خونه شاهروخ جشن تولد شاهروخه همه جا رو تزیین کردن خونه پر از مهمونه ایرج و شکوف وارد میشن شاهروخ به استقبالشون میاد ایرش با مهمونه دست میده شاهروخ یه سر کارت به دست داره که پشت همشون عکس اکس محمد رزو شریفی رزو شریفینی کارتا را از هم باز میکنه و به صورت باد بزن در میاره به ایرش که توی آشپسخونه کنارش نشون میده به مهمونه هم نشون میده یه دفعه به کارتا فوت میکنه جمعشون میکنه به همه نگاهی میدازه کارتا را دوباره به شکل باد بزن باز میکنه فقط روی یکی از کارتا اکس شرف نیاه هست. بقیه سفیده. بده <تصفح> من این اکس رو فقط درسته بقیه عکس ها نسبه. همه در حال غذا خوردنن. ایرش از روی میز غذا میکشه. رو پر کرده. خونه اشرافی فروهر. فروهر داره یه سر مغفور قیچی میکنه بوخور ایرج شه ایراج باشقابو با بچه همه رفتن دوبهتون اماشگاه به اشق و حال من اینجا سرما حال خراب شده به پای اونا تو خوبی بچهت خوبه زنت خوبه میرا جون چند تصمیم پرده آبشه برای من بگید که سبابه هشت میبره انگاشتام جور نداره تمام بندهای پام داره اصلا میشه من خیلی کم سربا میخورم امسالیه این دفعه دفنه دکتاریم نیستم اونچنان که حیفاشان برم خورس میکرم الان این شرقم خودش مردن آنگی بیوتیکه آی فروها؟ منم صادقانه بهتون میگم کم آوردم. میخوام دوباره برگردم سر کو. بزنم گفته بودم سه ماه برمیگردم. الان چهار پنج روزه گیر داده. چرا بر نمیگردی؟ چی شد؟ منم هی دارم چاخام پاخان میکنم. پیله کنه سرش داد میزنم. اونم دوباره بنا کرده به خرس خوردن. یه خورده شده ماهی دلقشه. دخترم از اون واسه ترمو خورده. یقین خودتون میدونید سرمو خورده تو این سه چه جوری از تو خورد میکنه استخونه آدمو. تازه اون طفل معصوم که هفت ماه هم به دنیا اومده. فروس آقای فروه بجزه بدیم برگردم سرکن شما جای پدر منید من که از پدر خیلی ندیدم منم جای پسرتونم اجازه بدیم برگردم آقا من این معذرت خواهی به شما بده کارم چرا؟ داشتم از اینجا میرفتم کمی تندی کرد ای بابا جوونی الان مطین شد پسرتون برگشت فرانسه نون اینجا آب اینجا خجا از اینجا. <تصفيق> ایرش همه اینا رو داشت تصور میکرد سرشو تکون میده فروهر داره مقواه ها رو قیچی میکنه آب میوه میگیره ایرش با نوع امیدی سرشو تکون میده از خونه فروهر خارج میشه خونه ای ایرج. یک کنسرو تانه ماهی داخل ماهیتابه پر اساب که در حال جوشیدنه. شکو توی تراس داره برای کبوترا دون میپاشه. گیتا بغلشو بارون میاد. دونه ای که داره میدن به کاهترو تماوشه بیقیه. کنسرو تن ماهی ترکیده و تمام سقف و دیوارا و وسایل آشپزخونه به کنسرو تانه ماهی آلوده شده. ایرج نگاهی عاقلانه در سفی به شکو میندازه و وارد آشپزخونه میشه. شکا هم به دنبالش همه جا پر از روغن و تونه ماهیه قطی خالی روی زمین میافته ایرج با پاهاش قطی رو شوت میپنه جی جی اوسم رفته کفتره داشت هم بهشون دون میدادم کفتره کفتره کفت بخورن هم یه تونه ماهی بشین باید علت اتفاق <مشتراك> جنوبی نیم از داغبایی نسیم میگه. از این مدت میخوای شودی خدا و جیل میکنم. بعد من میرم دم سامدو، پارم گردم یه، ایو کیف پوله؟ کیف پوله؟ خونه جا گذاشتن. <مشتراك> بعدم گردم یه که منشون استادم هم با ما. میخواین گرو بذارم یارو پاک کنم میگه ای بابا حالا چه عجله ی بعدم بریم همین اگه نشو تو حاشیه خاص مام بر. نمیتونی. نمیتونی. چی نمیتونیم نمیتونم آبه رویزی نکن روانی ایراج متوجه زنی که از بقالی بیرون میاد میشه از کیف زن پولی روی زمین میفته ایرج برش میداره و راه میفته دارن برمیگردن اگه حواس جمع بود شامو نمیترکنی الان شوار دیبونه نبود زمین رو نگاه کنه هلیون پنیزار توانی ماره ما نیست تکنم ماره اون خانوم هست که تو بقالی بود بایستا بیدم ب پیت گفتم من دویدم دنبال دو اون خانومه که پول بهش برسونم اما ناگهان غیب شد من تمام تلاشمو کردم اصلا این معنیش اینه که این پول مال ماست خدا این پول سر راهمون گذاشته شو کو باور نمیکنه می اینو میفهمی اینکه این صندوق یه جلو ما ظاهر شد معنیش این کارو نکن این کارو نکن خودت میدونی فهمیدی این پول حرومه حرومه این پول میشه یه قوتی شیخ خوش واسه ساز گیتار نکن نکن نکن نکن حالا خدا میگه ببینین چقدر درست کارن ببین شیر خوش نداشتن بلچشون بدن نمیشان نخورد به سند آیفون تصویر میره از صفحه آیفون مردی رو نبینه ولی آقا به خانم شکوه ایدری بگید تشریف بیارم پایی تشریف ندارم فردا تشریف میارم شما فردا تشریف بیارید. جمع کن بریم خونه احمد احمد داره رخت خواب میاره پهن کنه گیتا بغل طیب است گیتار رو به شکوه میده هر دو بلند میشن برای ei از شما asun, تعریف on قشنگ شما رو sumar, mis naiset. Larva, haunnu, mä angin, että Gyuri on olgoja, ja kode on sinut, että zendäki. Kahfan, mä ison کنکور گفتم kun ei mä rakonku, kohfan, mä adjekon. Kahdeta, riippun, niin? Jus, ei, se. Häpä, tii, siuna, mä asun, riippun, خیلی asun, شما asun, mä asun, کتاب asun, mä asun, mä asun, mä asun, یه ها میشینه چهار ست کتاب یه نفس میخونه قبول شدید شما؟ بله ولی زاهدان احمد آقا مخالفن که بریم زاهدان شما تهران قبول شدیم؟ بعد ما شالله. الان سر کلاس میریم نه به خاتی یه سیلی مشترات شخصیه سال مرخصی گرفتم خب لحظ چی خواستیم تشریف ببرین همین پایین پهلاست آقا هم داره دنپایی پایم پشت در هست دهیو خانم ده. حاشیه یارم بریم دیگه ایراد خانو خانومشونو موزه اونشون نشو دیگه. بله باید از تکفند ممنون. فایده. چایی شنا بفر. چراغ خوابم اگه خواستین فقط همین سرپیچشو بپتونین صفر بشه روشن بشه. آدم شده اینا. چه ساندگی ساده و نقلی دارن. خجالت شو من باش دور کردم. چه زنه خوبی داره. عواذات الان خوش خوشی کتره زن نمیگرفت این که حالا این تهیه تایبه خان احمد آقایی من میگن علی ایدو پیشونی ما با این گاز هر ثانی اونها کمی حدو حساب نداره آجا آجا زهر mort هم تو همه حساب میشین ببین من یه چه گفتم از زنم اوناست یکی اونم رفته چکو برگشت زده حالا موخه جلب زن منو من گرفتن حالا من ما فرار کردیم اومدیم اینجا ایداد <تص> <تص> hey, بیداد تو تو نمیدونم ارج بده دیگه حالا او فرق کرده من یه پولام دست خانومانه علی خب یه پیشنهاد میتونم بهتون تا خودم ناراحت نشی زود بگو ببین خانومت حاضر یک یک کنی میگم امتیاز دانشگاه تهران چه به من به ناراحت شدی ببخشید من گفتم ناراحت ندارواشن عالیه جلوی در خونه ایرج عکس ماشین ایرج که فقط بدنه داره Hatsi daa, raiden. Ja kudoin muuta aloitetta, että hamstalaisilla on oikea tyttö, joka on tyttö, joka on tyttö, joka on tyttö, joka on tyttö, joka on tyttö, joka on tyttö, joka on tyttö, joka on tyttö. Hamstalaisilla on oikea tyttö. Hamstalaisilla on oikea tyttö. Hamstalaisilla on من tyttö. Hamstalaisilla on oikea لطفاً شما یه نفر نمیخواد توی این دنیا رازدار باشین قصدی بوده آره برش کرده ماشینو به امون خدا آره من نمیدونم خود نمیخوادتش برش برش برش تو شرکت آره دانشگامو فروختم برای کی خدا آیا از گذاشتم برای کی؟ من نمیخوام تو مسائل خصوصیتون دخالت نمیخوادی ماشینو فروخته بکنی تو شرکت هفتم چکو گرفتم بعد. فرصتا من ایرج فرار می‌کنه، شوکو به دنبالش می‌دوه. ایرج از در حیات خارج میشه و از سوی پیاده رو به سمت انتهای کوچه می‌دوه. های شرکت واحد از هاشون حرکت می‌کنن. ایرج داخل یکی از اتوبوس‌هاست. کلاهی به سرش و ریش داره. لباساش مندرسه داره با زن حرف می‌زنه. هم خورده وقتی فهمیده خواهر و زلیل شدم من یه افرسیش همو نزدم نها که این روما نها از ویس آره دیدم تیغم کند شده صورت هم بر من نمیسازه نم ماست دیگه یه کاری بکن یه حرکتی بکن یه حرکتی کردن. کردم بابای بانتی می به خروشی دار من صدا کرد گفت بیکار نچه روزی هفتش تو هم بد میدم بیا بشین یه جای قریب گل سیب زمینی پاک دیدم دستام لیچ دی افتاده داره پینه میبنده نمیشد نیفهمیدم میگفتن رفتی عمله شدی یه روزم ماشین یکی رو گرفتم گفتم برم یه جای پرت کار کنم که یه آشنایی نبینه طرف های شیر پاستوریزه و جاده سابه اون برا خبتم الانه که به قتل برسم یه رفیقه دیگه ای داشتم مدیر استخر ناشنوایان من هم شنام خیلی عالیه اون برای قریق نجاتی منو برد اونجا خب آدمی گرفتار که نمیتونه کسی رو نجات بده خودش قریقه رفیقه اون هم عذر ما رو خواهد حیف شد وجود 290 توم هم میدادن هم هر ویدی دارم کار دیگه پیدا نکرده. از صبح تا حالا اومدم بیرون خرید. دنبال پنیر خورده. پنیر خورده تره حالا از کجا از اون برای شهر. یه کم بخور. خوشمزه است. یه کمی شوره ها. اینکه که مال ته بیته. نمکوش شده. خب نداره. بهم میاد ما بشینیم خونه یه کاری، یه فکری، یه طرحی. نگه نمیخواد بشینی خونه خوابت میبره من واسه تعمال جنازه رو ندارم منو میگه ها. منزوش اجنازه منم مقاجرتش حرف بزنه عدای عصبانیت در میموردم میترکید تو دو روز گریه میکرد همش اشتر ششش التماس ماهبت معلش نمیذاشتم قوشتایی میکرد که فیلو تو هوا خواب میکرد محب بلیه ببین اونجا ایشکی محلش نمیذاره آدم حسابش نمی کنن بهش نمیگم بیا آقا ماشینو تو جوب افتاده بیا درش بیار اینه بیمحلی مردم دیبونه میشن محله واسه زنم اینه های روزا گل و درد داشتم سهرما خورده بودم دو تا لیمو توی اقچال بود خواستم خوف کنم گل و درد دیگه چرای که ارزو فروش باشد سراغ نداری؟ چرا؟ شیر ارزونم هست باید بری صبح تو صف های سیر صد هم هست دو تان میدم میدونای تره بارم هستم اونم صبح زود اگه بخوای سبزی خوردم بخری باید بری صفح ولی ارزون تره یه جای دیگه هم سراغ دارم خیلی ارزونه گوشت چرخ کرده میده که لوی سه هزار و دیویس دومن سنگدون مرغم قاتیش میزنه هیچ هم نمیفهمه اتفاقا خیلی هم سالمه کلیسترول هم نداره همونجا هم اسکلت مرغ میفوشن فرقی نمیکنه. کنه خود مرغ دیگه قوتش هم توشه یه ذره اون ورتر پای مرغم میدن زیاد دروغ نگو بازنتم خوب باش باقشم توکل کن به خدا این پلاستیک چیه؟ تو راه پیدا کردن به من واسه دخترم به ترکونه حال کنه شما واسه نوت نمیخوای اگه زیاده بده بغس گلوی ایراج رو گرفته چشماش قرمز میشه حال میده. عشق از گوشه چشماش سرازیر میشه خونه ای ایرج گیتا توی روروکش نشسته از بابازیاشو به دندون میکشه ایرج روی زمین کنارش باز دراز کشیده شکو از در وارد میشه شروع به جام کردن اسباب بازی‌ها می‌کنه. قولو دوام دارم بخرم، هپلی هم صورتام می‌خوره. مامورای برق اومدن تو کوچه بالا سر کنتور. می‌خوام برقم رو قطع کنم، برق قطع میشه. چونا نداده بودی نه؟ نه. ای بی میری تا که اگه بگیریم با آب رو از این خلاص میشم ایشالا، ایشالا. ای کون امرا صحت تو. سه تا بیری تو تو سوامه پارکیگ زن رو صدا میزنه زن داخل اتاق سرایداری میره این سابخونه این ما آقای لباسلانیه میشتسین که این که نه که چه پول اجاره شو نهیدیم باره هر ماه پول اجاره رو از پول پیش ساختمون کم میکنه. خب خب حالا اصل پول برج پیش تموم شده همین روزاست که سرگردش پیدا بشه شما دیو به پادیه. دیدمش ومرشونه تو نه حرف نمیگه. یه کار دشته. زن بر میگرده کارت دعوتی رو بهش میده. به ترس من زن اولیشه با خانم تشفیه وانته اسوینه ملت شما که به خود که راه ندید دور اونور چهاردونگ است فقط خواستم یه خواهش ازت بکنم میشه ایشون خانم رو به من امانت بدید تو این عروسی که حالا منم با روضه آوریدار جلوی کس کارم زن اولی اسم من دارم عروسی تموم بشه صحیح سالم برش می‌گردونم خدمتت اوتاخو شکوه لباساش از خماد در میاره برای, شادی، برای عروسی برای مهمونی درم خودم این نمیشم باید چی بدبختی دارم فراموش کن تلا امیدم نعیره بنداز گره گردنش خودم چیزی نمیخوام باید میخوام شاد باشم خوش یه بقیه رو تماشا کن باید میکنه طلا رو. کم نمیکنه. کنه کتر شعورتو آمادینه درش بیا. سفیده کثیف میشه نداریم بدیم خوشویی نمیخوام اون ترشکان من باید قربون قدوالاش برم سیاهر بپوش همین کار دیفکیه همه زندگی دیفکیه پول پول به خدا پوله نشه شب شب عروسی یادم افتاد تو جیبم در بیارم نازتو بکش نازت تا بده من واسه حالونی و راهو جهی گفتم کارم موزه آرایشگری مفتی اسلام می چه خوششت هم هست ده تو من خونه ایرج ایرج خوابیده شکو گرد سوز به دست وارد اتاق میشه کنار ایرج روی زمین میشینه ایرج ایرج پاشوی آلا پاشو گیتالش خوب نیست باید ورمیشد دور بیمارستان تو آزمایشش یه افونت ادرالی دیده شده بیلت ضعیف بودن ریاهاشم ممکنه افونت شدن اونا هست که چند روز بعد بسری باشه من میگم منتقلش بکنم و بخش ایرج روی پله های بیمارستان نشسته کنارش در کوچیکیه که توی حیات بیمارستان باز میشه آفتاب کمجونی به صورت ایرج می‌تابه عکس ایرج توی شیشه در افتاده ایرج سرشو بالا میبره و با آسمون نگاه میکنه. خونه ایرج در خونه رو باز میکنه، وارد میشه. چمدون شکوه کنار دره، کتشو روی زمین پرت میکنه. کلید برقو چند بار میزنه، اما چراغ روشن نمیشه. به اطراف خونه نگاهی میندازه. چشمش به عکس بزرگ قاب شده خودش میفته که روی دیوار نصب شده. به سمتش میره. عکس ایرج با کتش الوار گمون قیمت و پیراهن سفیده. توی تاریک روشن استودیو گرفته شده. با دست راست شاقه کتش گرفته و ژست خاص و پر داره. نزدیک قاب عکس میشه. به صورت خودش خیره میشه. به قاب عکس هلنگاری میزنه. قاب روی دیوار مثل پاندول ساعت تکون میخوره. ایرج بر می نگاهش مات و خیره است چشمش قرمز شده به لبه تلویزیون تکیه میده به زمین خیره میشه به میز نهارخاری آینه و کنسول مبلمان و فرشا خیره میشه روز خیابا وسایل خونه رو پشت یه وانت جمع کرده خودش وسط وسیله ها نشسته آینه روبروشه تصویر داغون ایرج از توی آینه دیده میشه خیابونا خلوتن خونه ایرج خونه خالیه هیچ چی توی خونه نیست در باز میشه آفتاب به داخل خونه میتابه شکو در حالی که گیتارو رو در آقوش داره وارد خونه میشه در باز میگذاره ناباورانه به خونه خالی نگاه میکنه به داخل آشپزخونه سرک میکشه به وسط حال میاد فقط یه مبله یه نفره داغون توی حال مونده چند تا روزنامه هم با زمین ریخته. انتهای حال ایرج روی زیلوی خابیده یه لپتوب هم کنارشه شکو گیتار رو روی زیلو مگذره ایرج با صدای گیتار بیدار میشه بغلش میکنه چاوره بابا همین صحوره بابا شما داری شکلوی من اساس گیتار چه صحه جاشه یه جوری حرف می‌زنین انگار ننگار که من 20 روزه که نیستم خونه انگار همین یه دقیقه پیش رفتم و بیرون برگشتم مسکراتم نیست که می‌خواستن دیگه برن نگردن آ 20 گذاشت زامپانو من راجب طول مدت زمان صحبت نمی کنم منظور من اتفاقات <تصفح> هفت دارم اگه 20 ساره دیگر می زشت باست همین جوری حرف می زدی کیو کی <تصفح> ای وای خدا این چه طرز جواب دادنه تو همیشه راجب کمترین چیزی که تو صحبت آدم حرف می زنی اون چیزی که اصلا منظور آدم نبوده نمی خواهی عوض چی تو زامپانو لبتا با کجا بردی؟ پرویز آورده خوبی تو؟ زنده سنوزون کرا بردار نگو تو رو خدا بچه خوبیه آهو والا مامرفته نیاد هر روز به من سر میزنه حالا پیداش میشه اوه. با جناقت دیروز نیزن به گوشش رسیده چی کار کردی همه فهمیدن که تو برای خرج بیمارستان گیتا اساسا رو فروختی من اوه. من روز فهمیدم همچه که فهمیدم همچه یه خوشم اومد اسفه همه گفت اسفه همه باید همه فهمیدم باشه شما نم خب توی لابد آوه رو رفت همه فهمیدم من بی پولم حتمه پلاستیک پسر نداشتم که فهمیدم من بی پولم. گفتم که داری یه ازت خوشم نیام نه با آره بابا <تصفيق> پرویزه جانمه جانمه آره خوب هم حسد دارم بوی بهبود وضای جهان میشنم سلام اتاق گیتار شکوه داره اتاقی گیتارا جارو برقی کشه زیر کماد هم جارو میکنه با شدت مکش جارو قلب تلایی گیتا از کنار پایه کمود جلو میاد سیم جارو برقی به پایه کمود گیر میکنه شکو جارو رو خاموش میکنه خم میشه دستش رو میبره زیر کمود سیم رو سعی میکنه که آزاد کنه نمیتونه کامل روی زمین دراز میکشه که بتونه سیم رو ببینه در همون لحظه چشمش به قلب تلایی گیتا میافته بر همونیه که ایرش روز عروسی بهش داده بود کارگاه خیاطی ایرش کنار یکی از میزای خیاطی استاده به میز تکیه زده پرویز از پله ها شاد پایین میاد آقای گوچی آقای ورساچی ساعت پنج بعد از ظهر من تو زنبود چی نداری؟ آقای چیچی به اینجا به اینجا کار دارم آقا این رس دوممونه. مبارک اون باشه. اینم که بنده امضا کردم. امضا شما لازم داره. خدمت شما. بفرما ای خدا بزنید قرارداد رو الان ببندید. یا کن. خدا کنه. خدا کنه. خیلی بابا. تو رو بعداً می ای جان، حال تو می‌خرم ها. ای جان. حرویز میره. ایرج شروع به شمردن چک پولا میکنه. دوباره و دوباره اونا رو میشماره روشون دست میکشه صورتش آروم آروم بالا میاره به نقطه نامعلومی خیره شده هیچ حسی توی صورتش نیست فقط نگاهی عمیق و مات نگاهی که انگار تا ابد توی صورت خستش ادامه داره هیچ سفر کردن میران شنوندگان عزیز امیدوارم از فیلم پیپولی لذت برده باشم عزیزانی که در تهیه این برنامه همکاری کردن آقای علی هایجی ناروزی صدا بردار فرشد آزرنیا سردبی رو تهیه کنده و خودم سنم سالهی که تنظیم و اجرای این کار رو به عهده داشتم تا رادیو فیلم دیگه خدا نگهدار.